بخش چهارم مادر بسیار تکیده و لاغر بود با چشمانی سیاه و درشت که دو جفت از همانها هم در دو دیده میشد. گونه ی اشگاه به سرخی میزد و گاه که دور هاش را سرمه میکشید و آن را از دو طرف کمی ادامه میداد شبیه زنان مغل می شود. دو تا از دندانهاش تلایی بود وقتی میخندید، یک رج دندان سفید بالایی پیدا بود و دندانهای طلای چسبیده به نیش از هر دو طرف برق میزد. اما وقتی نگران بود، با چینی در پیشانی زنان رنج دیده را میمانست که خیلی چیزها میدانند، اما بروز نمیدهند. گفت، شماها خیال میکنید که پدر دشمن شماست، اما اشتباه میکنید. آیدین گفت، من میدانم که چی می بگویی، اما خوشبختی او با من خیلی فرق دارد. به شاخه‌های درخت کاج نگاه کرد که باد می و سیخ های کاج سبز سبز بر زمین می ریفت. مادر بر لبه نرده طوری نشسته بود که هر لحظه احتمال می‌رفت از پشت بیوفتد یا باد بی اندازدش. گفت از مدرسه که برمیگردی یک راست میروی بالا میگویی درس میخوانم اما من میدانم که تو کتاب غیر درسی هم میخواانی خب می توانی کمکی هم به پدر بکنی. اما آیدین بی توجه به این حرفها همیشه کتاب شعری در دست داشت و شعرها زیادی از بر بود. گفت این خانه را برزیستن ایمن ندیدم و خندید و مادر را به خنده داشت. و مادر گفت، میبینی که دو سال است اورهان در حجر کار میکند، هم پول بیشتری دارد، هم احترامش میکنند، هم از تو شادابتر و خندانتر است. تو خموده شده ای، تو غمگینی، خودت هم شاید ندانی، اما بچه که بودی آتش بودی، خانه را میگذاشتی روی سرت، یادت نیست؟ سر و صدایت یک دم نمیشد، وروجک بودی، اما حالا و ساکت ماند. گیسه بافته و بلندش از دو سونه بود. می جلو و هی بافه ها را باز می کرد و می بست. همیشه سرج را باز می کرد و دوباره می بافت. نگاه هم نمی کرد. می بافت و در دست پیچش می اینکه من تقلا می کنم بروی کمک پدر به این خاطر است که از حالا همه بدانند شماها دوتا برادر هستید. یکی تویی، یکی اورهان آیدا که عروسی می کند و میرود حالا اگر با این مریزیش کسی حاضر شود او را بگیرد یوسف هم که آدم نیست اما سهم شما دوتا مساوی است تازه تو بزرگتری نمیخواهم حق تو پایمال شود آیدین گفت باشد میروم اما موقتی فقط به خاطر دل شماها. از روز بعد آیدین عصرها به حجره می رفت و شب همراه پدر و اورهان باز می گشت. آنجا مشتری راه میانداخت، مطالبات وصول می کرد، زمین می شست, به شیشه ها دست می کشید، گونه های پسته و تخمه را سرپل می کرد، قیمت ها و نوع جنس را می نوشت و چوب علم می زد. و چنان در می و دقت می کرد که در مدت دو ماه کاملا سوار کار شد و توانست حساب دفتر روزنامه را وارد دفتر کل کند، جنس بفروشد و با چورد که جمع و تفریق کند. پدر مدام زیر چشمی می و گاه سعی می کرد غیر مستقیم به او بفهماند که زندگی یعنی همین، اما ارهان نمی بپذیرد. رنج می برد، حسادت می کرد و می خواست که آیدین به همان درس و کتابش علاقه باشد. یک شب اورهان گفت: پس تو کی درس می‌خوانی؟ آیدین گفت: هیچ وقت. من درس نمی خانم. تو توی کلاس گوش میکنم. آن روزها با اینکه جنگ پایان یافته بود اما شهر هنوز ناامن بود. ها ریخته بودند و تمام شیشههای کارخانه پنکسازی لورد را داده بودند پایین. آقای لورد تئی دو سخنرانی اعلام کرد که اجانب نمیگذارند صنعت مملکت را پیش ببرد نمیگذارند آبروی مملکت حفظ باشد و اگر قوای انتظامی همکاری نکنند او ناچار است که کارخانه را ببندد و به انگلستان برگردد تعطیل شدن یک کارخانه عظیم و بیکار شدن آن همه کارگر به خصوص در سالهای ترقی برای دولت صرف نداشت بنابراین دستور رسید. در صبح آن روز پر برد که شهر زیر بارش سفید دفن میشد دو نفس سبیل کلفت هزبی را درست روز در وسط میدان عالی غاپی که مرکز کارگری بود دار زدند و قائل خوابید خبر را عیاز پاسبان به پدر داد. آخر شب بود و برف همچنان می بارید. موقعی بود که پدر میخواست تعطیل کند و داشت چورد که می انداخت. پرسید عیاز شب جمعه یادت رفته عیاز کلاهش را پرد کرد روگ میز نپرس و نشست روی یک گونی تخمه پدر گفت از اوزا چه خبر عیاز گفت بیریخت آیدین و ارخان منتظر بودند که پدر دفترها را در کشو بگذارد، اسکناسها را بشمورد تا زودتر بروند و می که عیاز وحشت زده و حراسان است هر دوشان وقوع خبری را حدس می زدند. خبری که در چهره عیاز موج میزد و پدر حاضر بود دومن پسته و دومن تخمه بدهد و خبر را تمام و کمال بشنود. گفت، عیاز بگو. و سرش را نزدیک برد عیاز گفت قائل سبیل کلوفت ها خابید پدر گفت نه بابا عیاز گفت آره به پشت سر برگشت نگاهی به دالان انداخت و گفت مواظب خودت و بچهات باش احتمال دارد حزبیها ها کارهایی صورت بدهند پدر گفت ما که آخر ما که خودت بهتر می دانی. عیاز گفت کتاب یا اعلامیه حزبی که نداری پدر گفت ابدا عیاز گفت یک وقت ممکن است شبنامه ای اعلامیه ی کاغذی بیاندازند توی حجره یا خانه یا ممکن است بچه هات از مدرسه بیاورند نگاهی به آیدین و اورهان انداخت بچه پدر شما یک عمر آب روداری کرده جان این سبیل یک وقت کار از دیگر مواظب باشی. پدر گفت، کوچیکه که مدرسه نمی رود فقط بزرگه می روید که به حرف ما نمی رود عیاز اخم کرد و با دهانی گوشات از همیشه با آیدین گفت، چی دیدی ای از این مدرسه؟ بیکاری؟ بعدش کجا را می خواهی بگیری؟ به پدر گفت، بیارش بیرون. پدر گفت، من هم عقیده هم است. توی این اوزای قاراش که ما نمیدانیم کدام طرف حرف حساب میزند. عیاز حرف پدر را با دست برید. جنگ زرگری که شنیده ای. روزها میزنند به تیروتار همدیگر و شبها توی کاسه آبگوش میخورند. من که مأمور تأمینات نظمیام هوای هر دو طرف را دارم. یعنی بی طرف. پدر گفت احسند و با چشمهاش با آیدین تاکید کرد. از آن پس مدام آیدین رازی را زیر نظر داشت کتابهاش را وارسی میکرد هر روز به گوشش میخوااند که مراقب باشد سعی میکرد مانع مدرسه رفتنش بشود و معتقد بود که پسر بزرگش باید راه پدر را پیش بگیرد آنشب با پوستینی بر دوش مثل آدم نقاشی های مزهک همه جا بود میرفت و میآمد قدم میزد گفت باید به حرف من دقت کنی چیزی را که سالها بعد می خواهی بفهمی؟ من حالا می گویم. زندگی شوخی نیست تو خیال می کنی با درس خواندن به کجا می رسی؟ بعد از سی سال درس خواندن چقدر حقوق می انگشت سب را جلو صورت آیدین تکان میداد. ها چقدر می دهند؟ و در سکوت آیدین پروبال بیشتری می گرفت که بگوید صد تومان هزار تومان؟ از که بیشتر نمیگیری، من از همین حالا بهت میدهم، به شرطی که دور کتابها و درس و مشر را قلم بکشی آدم بشوی. مادر گفت آره آیدین داشت جوراب های پدر و اورهان را در دست شویی راه روی بالا می شست اورهان گفت چه اصراری دارید خب هرچه دوست دارد بکند زور که نیست آیدا گفت تو را سننه مادر گفت راست میگوید به کار خودت باشد و وقتی پدر به حرف می آمد، مادر هی چنگ میزد. زد یک جارابی اختیار چنگ میزد زد گفت آیدین خوب فکراتو بکن. پدر با آن پوستین درست مثل وقتی که بر تخت پوست می ابهت داشت قدرت و قرور پدرانه از دهانش بیرون می رید. این همه سال تلاش کردم برای کی برای چی خب برای شماها. به شرطی که شماها نخواهید به ایسیت من به منافع من لطمه بزنید اگر با آدم احترام میگذارند به خاطر پول است به خاطر این است که محتاج دیگران نیستیم من دلم میخواهد با این استعدادی که داری از همین فردا کاسب بشوی میفهمی آیدین؟ کاسب و رفت به اتاقش آیدین نتوانسته بود مستقیم به روگ پدر نگاه کند روی پله نشسته بود و حرفها را شنیده بود. نمیدانست ترسد یا خجالت میکشد. قدرتی در آن چشم ها و عینک بود که مجبورش میکرد همان جور مثل همیشه فقط از پشت سر نگاه کند. وقتی رفت آیدین حس کرد خیلی چیزها بوده که می باگست میگفته. میخواست که پدر آن همه سخگیر نباشد و به همان ارهان قناعت کند. اما آن راه روی نیمه تاریک ناگهان با رفتن پدر چنان سکوتی شد که آیدین خیال کرد ساعت دیواری از کار افتاده است. و او مثل لنگر ساعت می رود و میآید مادر هی جوراب را فقط یک گل جای را چنگ میزد انگار زندگی به دور خود میچرخید و صدای یک نواقتی در طول لوله آب به کندی تکرار کمک می کرد. آب سرد بود و دست های مادر سرخ سرخ، درست به رنگ پالتوی قرمز رنگی که زمان بچگی تنش می کردند و می بردندش بیرون. آیدین یاد پالتو که می دلش مالش می پالتو پالتوی قرمز خوش رنگ و خوش دوختی که دیگر براش تنگ شده بود و پارچهاش ماهوتی بود با چهار جیب و کلاهی که از پشت روی شانش می افتاد. به مادر گفته بود خیلی قشنگ است مامان وقتی باران میآمد یا هر وقت هوا سرد می تنش میکرداند و این زیباترین لباسی بود که در عمرش داشت گاه دلش میخواست آن را جای بیاویزد که وقتی میخواابت نگاهش کند در آن همان اندازه احساس آرامش میکرد که پدر در پوستین به قرور دست میا. روزی که پدر می‌خواست اولین بار اسمش را در مدرسه بنویسد گفت که دیگر نباید این پالتو را بپوشد. آیدین گریه کرد. پدر گفت پالتو قرمز مال دختر دخترهاست. آیدین باز گریه کرد و پالتو را در بغلش فشرد. پدر آن را از دستش کشید گفت میفهمی؟ جوابی نداد و به پدر نگاه کرد که بسیار خشمگین بود و می‌گفت اگر میخواهی بپوشی بگو آیدین با سر تصدیق کرد. پدر گفت پس اسمت را در مدرسه نمی نویسم. آیدین گریه کرد. پدر یک پاش را روی پله مدرسه گذاشته بود و می خواست به بچه به قبولاند. گفت اگر می خواهی اسمت را بنویسم دیگر این را نپوش. خیلی خوب فقط توی خانه می پوشم. پدر اسمش را در مدرسه انوشیروان عادل نوشت. و بعد دیگر او آن پالتو را ندید اما رنگش قرمز بود و گرم بود مثل دست مادر که حالا سرد بود و اگر میخواست روی بخاری بگیرد حتما استخوانهاش تیر میکشید وان وقت ناچار میشد دندانهاش را به هم بفشرد و به دیوار مقابل خود نگاه کند شاید به این فکر هم باشد که چرا پدر بچه ها این همه خشمگین و یک دنده است اگر بمیرند، حرفش را تغییر نمی دهد. مادر گفت، پدر نگران توست. میگوید تو می توانی به هر کاری دست بزنی. میگوید حیف این همه استعداد و هوش برای این است که می خواهد دور و برش باشی. بعدت را که نمی خواهد. آیدین گفت، میدانم مادر. مادر گفت، پس چرا؟ و باز سکوت آمد. مثل سکوت آیده. سرش را زیر انداخته بود و موهاش سیاه و لخت تمامی صورتش را پوشانده بود. حتی یک بار هم سر بلند نکرد که به کسی نگاه کند مگر وقتی که به اورهان چشم غره رفته بود و حالا به قدر همزادش قصه داشت که ساعتها موه سیاهش را میان خود و زندگی حایل کند. شام پدر گفت تو انگار میخواهی مبارزه کنی. خودت را نشان نمی فکر می کنی دنیا یعنی آیدین مسئله مورچه را شنیده ای که وقتی آب داش می گفت دنیا را آب برد این برای من قابل قبول نیست آیدین گفت عقیده شما برای خودتان محترم است پدر پدر گفت عجب عجب بچه ما ما را قبول ندارد رو کرد به مادر پوزخندی زد و گفت آدم حوست میکند کند قرور این پسر را بشکند. مادر گفت زیاد سر به سر هم دیگر نگذارید. پدر گفت باشد باشد جور دیگری صحبت می کنم. رو کرد به آیدین منتها به جلو و پاش نگاه می کرد. ببین پسر از فردا نمی روی مدرسه. میایی حجره. آیدین گفت من میخواهم به درس ادامه بدهم پدر. پدر گفت اگر نخواهی چطور می شود؟ آیدین گفت می میرم. پدر گفت بمیر اتاق در سکوت یخ زد پدر باخته بود حریف این نوجوان نمی شد و نمی چه باید بکند یک کفکیر پلو در بشقاب خودش ریخ و گفت هه می میرد. یک کفکیر دیگر کشید به جهنم چند قاشق خورشت برداشت، یک قاشق ماست به دهان گذاشت، فدای سرم، بعد شروع کرد به خوردن. لحظه هایی گذشت، کسی حرف نمیزد، اما پدر گفت، میبینی آقا زادهت میمیرد. چند قاشق خورد و باز گفت، به جهنم، یک وجب بچه روی حرف من حرف میآورد. یک بار فریاد کشید، هرچه میگویم باید بگویی چشم. اما ظاهرا از من خوشت نمی آید که نمی خواهی کاسه بشوی مگر من چه ای بی دارم آیدین جواب داد من از شما بدم نمیآید. من تصمیم دارم تحصیل کنم پدر گفت اگر نخواهی چطور می شود آیدین گفت میمیرم پدر عصبانی شده بود قاشق را پرد کرد و ایستاد با همان پوستین به همان قدم ها میبینی وقاحت را میبینی بعد آیدا که آمد نگاهی به هم انداخت و کنار مادر نشست دستهاش خیس بود و پوست انگوشت هاش پیر شده بود مادر گفت بخور لحظه ای به دستهای خیسش خیصش نگاه کرد و گفت دکتر شوشانیک گفته که نباید زیاد با آب سر و کار داشته باشی بخور آیدا گفت من میل ندارم پدر با فریاد گفت به جهنم که میل نداری برو سرت را بگذار مادر گفت به این چه کار داری؟ پدر از پنجره بیرون را نگاه می کرد، خسته بود، میلی هم به غذا نداشت، گفت برای اینکه هیچ کدامشان به آدمی زاد نرفتند، هر کدامشان یک اطواری دارند، براش معجون افلاتون درست می کنم، نمی خب به جهنم، به درد بکشد. بعد آیدا بی صدا و آرام از اتاق خارج شد. پدر گفت اگر میخوایی درس بخوانی خانی حق نداری پایت را در حجر بگذاری. مادر گفت بعد از ظهرها که پدر قرید لازم نکرده لازم نکرده از این به بعد حق ندارد بیاید حجره من به کمک کسی احتیاج ندارم حجره مال اورهان میشود. اورهان با اشتها غذاش را خورد و پدر گفت به قول عیاز با دو دسته نمیشود بحث کرد بی سواد و با سواد. آن وقت بود که آیدین یک بار حوض کرد به پدر دست بزند. فقط سر انگشت را به دست یا صورت پدر نزدیک کند. سالها بود که دستش به پدر نخورده بود. حتی فرصت پیش نیامده بود که از کنارش رد شود. با آن اندام کوچک، موهای جوگندمی، لب خوشت و اخمای درهم هم حالا تکیه داده به مخده چنان عبوحتی یافته که کسی جرأت نداشت تکان بخورد. چنان ناآشنا و غریب که فقط میشد زیر چشمی گوشه پوستینش را نگاه کرد. وایدین همیشه در این فکر بود که چطور می شود دست روی گشانه پدر گذاشت و کنارش ایستاد.